در گورستان ادامه خایل داد همانجا منتظرمده بودم نمیدانم چه مدت که ماشینی از پایین جاده آمد تنها ماشینی بود که به چشمم خورد خیلی آهسته میآد به نظر میرسید مقصدش گورستان باشد فاصلش با من بیشتر از آن بود که بتوانم ببینم چه جور ماشینی است. به هر حال نمی توانستم تشخیص بدهم نمی آیا همان لیموزین کادیلاک است یا نه؟ ماشین دویست متری پایینتر از من کنار جاده داشت. چراهای جلوش خاموش شد و چند نفر از آن پیاده شدند چرا قوه داشتند اما من نمیتوانستم بفهمم کی هستند ممکن بود گردن و رفیق بلندش باشند و ممکن بود فقط از همین سارقان عادی قبرستانها باشند هیچ جور نمیشد فهمید، مگر اینکه از ماشین می پایین و کارگاه خصوصی یا مأمور مخفی بیپروایی می شدم که محیای به نتیجه رساندن بزرگترین معامله زندگیش می شود. پس همین کار را کردم. از ماشین پیاده شدم. فقط یک چیز کم داشتم. چرا قوه. بد فکری به ذهنم رسید. برگشتم توی ماشین و داشبورد را باز کردم. عجب گنجی، یک چرا قوه. لطف خدا بود. همه چیز داشت جفت و جور میشد قرار بود گردم و بانوی ما شاشدان بیکران را در کنار یادمان قربانیان نظامی جنگ اسپانیا آمریکا ببینم یادمان 300 متری با در گورستان فاصله داشت چند قدمی قبر پدرم بود بارهای بار برای رفتن سر قبر پدرم از کنار آن رد شده بودم مطمئناً دلم نمیخواست او را بکشم شاید اگر این قضیه فیصله پیدا میکرد آخر کاری وقت میکردم چند دقیقهی بروم سر قبرش کمی عزاداری کنم. چرا آن توپ رو انداختم تو خیابان؟ کاش هرگز آن توپ رو ندیده بودم. چرا قوه تو یک دستم بود؟ روشنش نکرده بودم اما آماده بود تا هر آن در صورت نیاز نورافشانی کند و اصلحه پر هم تو دست دیگرم بود. و آهسته توی گورستان خزیدم و راهم از بین قبرها به سمت یادمان جنگ اسپانیا آمریکا باز کردم در نهایت احتیاط قدم بر می داشتم. قافلگیری عامل بسیار مهمی در این موقعیت بود و میخواستم این فرصت مال من باشد از درختزاری میان برزدم تا به یادمان برسم یادمان درست آن طرف درختها بود برای رد شدن از بین درختها باید احتیاط می‌کردم. هوا خیلی تاریک بود و نمیخواستم زمین بخورم سر و صدا را بیاندازم. وارد درختزار که شدم، هر قدم را طوری سبک می کردم که انگار قدم آخر است. مثل سایه از بین درختها رد می شدم و تا نیمه راه را رفته بودم که صداهایی به گوشم خورد. از سمت یادمان حدود پنجاه متر جلوتر. نمیتوانستم کامل بفهمم چه دارند می گویند. اما سه نفر بودند، دو مرد و یک زن. فاصله بیشتر از آن بود که بتوانم قیافهشان را تشخیص بدهم. درخت ها صداشان را خفه می کردند. با احتیاط کامل ده قدم دیگر برداشتم و بعد چند لحظه ایستادم تا حواسم را جمع کنم. بلکه بفهمم که هستند و چه دارند می اما هنوز هم خیلی دور بودند. این احساس استراباور را داشتم که سر و ته قضیه دارد به سرعت هم می آید. یک جایی کار می لنگی. دوباره شروع به پیشروی کردم هر قدم گامی به پهنای ابدیت بود دلم میخواست در بابل بودم و دست نعنا تو توی دستم بود. وافدگیری بالاخره بین درختها در موضعی قرار گرفتم که توانستم ببینم کنار یادمان چه اتفاقی دارد می‌افتد و صحنه به این ترتیب بود اولین چیزی که به چشمم خورد گروهبان رنگ بود که آنجا ایستاده بود و چرا قوهی توی دستش بود من ایستاده در میان درختها دور از دیدرس به او خیره شده بودم او آخرین آدمی بود که انتظار داشتم آنجا ببینم مات هم برده بود لعنتی چه اتفاقی داشت میافتاد دومین چیزی که دیدم گردن بود و بانوی آبجو سرکش او که آنجا ایستاده و با یک دستبند به هم بسته شده بودند گردن خیلی ناراحت به نظر می رسید بلوند هم انگار واقعا بدجوری آبجو لازم شده بود و در مورد او این یعنی یک جعبه آبجو رینگ کنترل صحنه را کاملا به دست داشت داشت با آنها حرف می زد. همه چیزی که میخوام بدونم اینه که چرا اون دختر را به قتل رسوندین و بعد سعی کردین جسد اون از پزشکی قانونی بدستین. وقتی کشتنش میتونستین جسدشو با خودتون ببرین. است. سردر نمیارم. بعدش خواستین جسدو بدزدین و این شد که گیر افتادین. گردن گفت. ما هیچ حرفی واسه گفتن نداریم. رینک گفت. کی گفت که من میخوام از تو حرفی بشنوم؟ من دارم با این خانمی که اینجا صحبت میکنم کنم، اونه که این ماجرا را راهانداخته انداخته. پس تو زیپ تو بکش وگرنه خودم این کارو بسط می کنم. گردن میخواست حرفی بزند، اما نظرش عوض شد. حضور گروه من رینگ برای واداشتن او به این کار بس بود. خب خانم، حقیقت رو به من بگین. من میتونم از درد سرتون کم کنم. هیچکس واقعا اهمیتی به فاحشه مقتول نمیده. اگه با من رو راست باشین. فوق فوقش یه چند سالی واسه آب میخوره رینگ منتظر ماند. بالاخره بلونده اول لبهاش را تر کرد بعد به حرف آمد. گفت: گوش کن آ خپل. اول اینکه این, این دستبندا خیلی تنگن. دوم اینکه من یه آبجو می‌خوام. سوم اینکه من پول دارم و حالاشم هیچ دردسری ندارم. و چهارمی که تو هیچی رو نمیتونی ثابت کنی. همه چیزی که تو تو دستداری یه ما شواهد مبتنی بر قرائنه که واکلای من مثل آب خوردن نیست و نابودشون می وقتی تو رو سرجات نشوندن و از شرت خلاص شدن، اداره پلیس به عنوان معلول ذهنی بازنشستت میکنه یا اینجوری میشه یا اینکه مأموریت بعدی که بهت محول می تمیز کردن اسبا تو استبل پاسگاه پلیسه. حالا آزایی خورده روشنتر شد. هیچکس تا به حال به گروهبان رینک نگفته بود آجان خپل او همانطور آنجا ایستاده بود و نمیتوانست باور کند رینک آنطوری هارتوپورت کرده بود و بلونده هم اینطوری پارش کرده بود بلونده گفت خوب فکر کن بعد با آمیزه ظریفی از متانت و عصبانیت به مچ دست‌بند خوردش نگاه کرد و به گروهبان زل زد چشم بر نمی‌داشت من همانطور آنجا ایستاده بودم و انگار که در سالن سینما باشم اتفاقاتی را که پیش چشمم میافتاد تماشا می‌کردم. جواز ورودش فقط این بود که نیمه شب با یک ماشین دزدی بعد از اینکه به پای کاکاسیاهی شلیک کردی و بعد به آپارتمانت رفتی و লাশ یک فاهشه مختول را تو یخچالت قایم کردی سری به قبرستان بزنی. همش همین. گروهبان رینک گفت: «به نظر من که داری بلوف می‌زنی.» بلندمایه دار گفت: باید اونقدر که نشون میدی احمق باشی. هیچ میدونی 25 سال تا پاله ی چی؟ گروهبان گروه با نجبور شد دوباره خوب فکر کند. رینگ کاراگاه خیلی باهوشی بود اما حالا با حریفی به باهوشی خودش رو در رو شده بود. دیگر برگ ای برای رو کردن نداشت. حیف که وقتی گروه رینگ رینک داشت شواهدش را برای آنها برمیشه مرد صداش دیگر به گوشم نمیرسید. این می توانست کمکم کند به نوعی بفهمم فهمم قضیه از چه قرار بوده. اما حالا هیچ برداشت روشنی از چند و چون ماجرا نداشتم. در تاریکی مطلق به سر می بردم. هنوز از دیدن گروهبان رینگ در آنجا در حیرت بودم. از کدام گوری فهمیده بود ما کجا قرار ملاقات داریم؟ اقرام جای قد نمی داد. احتمال میدادم گردن و آن هم پالکی مایدانش را ببینم. اما گروهبان را اصلا گروهبان آهسته سرتکان دادا دست کرد توی جیب و کلید دستبند را درآورد. رفت سمت گردن و بلونده و دستهاشان را باز کرد. اصلا راضی به نظر نمی رسید. زنک مایدار مچش را مالشی داد و بعد با حالتی تقریبا همدلانه به گروهبان نگاه کرد و گفت خب خسته نباشی. گردن بنا به قرولون کردن. خوش خوشانش شده بود که حالا دست بالا را دارد. بلونده گفت، خفشو آقای کلیولند، گردن دست از قرولوند برداشت، خرسی بود که موش شد. گروه رینک گفت، خب شما هم نمیتونین به کل برنده باشین، اگه قرار به باختن باشه، میخوام فقط تا یه حدی بباسم زن بزم آرا لبخندی به مأمور قانون زد، گردن هم سعی کرد برای خوشایند صاحبش لبخندی بزند، اما به طرز مزبوحانه ای ناکام ماند لبخندش مثل سردار سینمایی بود که تبلیغ یک فیلم ترسناک را می کرد. بلونده لبخند زنان گفت: با یه آبجو چطوری گروهبان یه میخونه پایین جاده است. دستش را به سمت گروهبان دراز کرد. رینگ چند ای به دست بلونده نگاه کرد و بعد دوستانه با او دست داد. گفت: چرا که نه؟ بریم یه آبجو بزنیم. خب پسر، این هم آن قافلگیری خدا حافظ ده هزار دلار آنها که رفتن آبجا بزنند من چند لحظه همانطور رانج ای آنجا امیدم برای ثروتمند شدم بر باد رفته بود. خداحافظ ده هزار دلار. آن لشی که تو یخچال داشتم یک پنی هم نمیارزید. از بین درختها رد شدم. رفتم سمت یادمان سربازانی که جانشان را در جنگ اسپانی آمریکا از دست داده بودند. احساس می کردم خودم هم یکی از آنها هستم. خب من هنوز پانصد دلار تو جیبم داشتم. با این پول نمی توانستم همه چیزهایی را که رؤیایشان را در سر پرورانده بودم، یک دفتر مناسب، یک منشی خوشگل و یک ماشین خوب تهیه کنم و بنابراین باید با همین که می شد کنار می آمدم. یک دفتر کوچک، یک منشی معمولی و یک ماشین مدل پای می شد داشت. کنار یادمان استاده بودم غرق در فهر. داشتم به همه این اتفاقات فکر می کردم که با دیدن آن چهار تا سیاه که همه هم تیزی به دست بودن یک هجا خوردم. لبخندی که پیشاپیش آنها داشت لنگ لنگان می آمد گفت سامدیک آم گوشت دور پاش درست بالای جای گلود پیچیده بود. این لعنتی ها دیگر از کجا پیداشان شد؟ لبخندی گفت ما فکر کردیم بیاییم ماشینمون رو ورداریم ببریم و واسه سه دادنش یه قدر دنیای درسته حسابی ازمون بشه. هنوز هم لبخنده پت و روی صورتش داشت. لبخنده یعنی که کلکی توی کارش بود. دیگر این که آب گوشت. ما اون پول تو جیبتو بابت خسارت میخوای. عواست باشید دست سمتون افتیری که منو باش زدین نره. وگرنه بدجوری آشلاشت میکنیم. آب گوشت. گندش بزند دیگر برا مهم نبود همه چیز خارج از حد تهم شده بود دستم را سمت جیبم بردم لبخندی لبخند زنان گفت حالا خوب حواستو جمع کن یه جورایی از تو خوش میاد. هر میاد پامو با تیر زدی حالا دیگه منو از خودت نامید نکن خیلی آهسته دست کردم تو جیبم و پول را درآوردم آوردم بسته یسکناس زیوایی بود چند تک رویا پرتش کردم سمت او، پول را نگاه کرد گفت پنج تا صدی گفتم جسد اون دختره چی میشه؟ هنوز میخواینش؟ نه میتونی ورش وسی خودت. آب گوشت گفتم خب دیگه چی؟ انتظار داشتم آسیه ها بریزن سرم آشان لاشم کنند هرچه بود من پای رئیسشان را با گلوله زده بودم و ماشینشان را هم بلند کرده بودم. بعضی آدم ها اینجور چیزها بهشان بر میخورد. لبخندی گفت. همین بس گشت باشت. ازت خوشم میاد. ما پول تو گرفتیم. حقمونو گرفتیم. گله استخونه نشکسته. از این ور رفت و از اون ور در اومد. حالا دیگه تنهات میذاریم. گذشته دیگه گذشته. گفتم. تا آدم باحالی هستی لبخندی کبابات چطوره لبخندی لبخندی زد رودست نره یه سری بزن چندتا دنده بهت بدم مهمون خودم و بعد صحنه را ترک کرد شب تاریک کنار یادمان و قربانیان جنگ اسپانی آنبیکایی ایستاده بودم دوباره تنها و تماشا می کردم که چطور دفتر کوچک منشی معمولی و ماشین مدل پایینم همه دود شد و به هوا رفت خدا رو شکر هنوز دفتری اعجاب انگیز با حمامی از مرمر با زیباترین منشی عالم و یک عرابه طلایی در بابل داشتم این جایزه افتخاری من بود. پسر؟ صدای فریادی بود که از پشت سنگ قبر می آمد. پسر؟ صدا رو تشخیص دادم. مادرم بود. با عجله خودش رو به من می میرساند و تقریبا از نفس افتاده بود. با کرختی گفتم: تو اینجا چیکار میکنی؟ تو که میدونی امروز روزیه که من میام دیدن پدر و همسری که تو کشتیش. تو که اینو میدونی؟ پس چرا میپرسی؟ گفتم نیمه شب تاریکه گفت من اینو میدونم ولی مرده ها میدونن نه اونو نمیدونن من فقط یه خورده بیشتر از همیشه موندم ولی تو اینجا چیکار میکنی تو که دیگه دیدن بابات نمیومدی بسش طولانیه تو هنوز کارگاه خصوصی هستی آدمایی رو که سایه های زشت دارن تعقیب میکنی که ای میخوای پولیو که به من به پس بدی؟ تخم حروم؟ مادرگاهی وقت و خوشدش مرا تخم حرام خطاب کند. عادت کرده بودم. حالا که اینجایی برو یه چیزی به اون مردی که کشتیش بگو. ازش طلبه بخشش کن. همینطور میگفت و مرا با عجله به سمت قبر پدر میبرد. آنجا جلوی قبرش ایستادم دادم. آرزو میکردم کاش چهار ساله که بودم، و بعد از صحر یک شنبه سال 1918 داشتم با پدرم بازی می کردم آن توپ قرمز پلاستیکی را تو خیابان نینداخته بودم و او به دنبالش ندفیده بود جلوی آن ماشین سبز در آمد و به جلو پنجرش دوخته نمی شد. گفتم متاسفم بابا مادرم گفت بایدم باشی چه پسر شری بابا تا حالا حتما اسکلت شده بخت یاری با مادرم از گورستان گذشتیم و به سمت دیگر رفتیم که ماشینش را پارک کرده بود حین راه رفتن هیچ حرفی نزدیم خوب بود فرصتی بود تا به بابل فکر کنم سریالم اسمیت اسمیت در جدال با سایه های را از همانجا که رها کرده بودم پی گرفتم بعد از اینکه که مکالمم با دکتر فرانسیس نازنین تمام شد بوسه آتشینی از دهن منشیم گرفتم بعد که نفس بند آمدش بالا آمد گفت برای چی بود؟ گفتم برای اینکه که یارم باشه. گفت پس اون پای خرگوش نازنین قدیمی چی میشه؟ نگاه طولانی و هریسانی به دهن شیرین و آبدارش انداختم. گفتم شوخی میکنی؟ گفت شوخی ندارم. اگه این جای اون پای خرگوش بخت و گرفته پس بازم میخوام. گفتم، میبخشی عزیزم، من سرم خیلی شلوغه، یه نفر بلورهای جیوه رو اختراع کرده گفت، اوه نه حالا ترس و دلهوره را در چهرش میدیدم شمشیرم را تو قلاف سرشانه یه زیر ردام کردم داشتم با سر تو یه قبر تازه کنده ی بیحفاظ میرفتم که مادرم گفت مواظب باش پسر صداش مرا از بابل به خدا ورد طوری که انگار دندانت را بدون هیچ داروی بیحسی بکشند را کشف کش کردم که توی قبر نیافتم مادرم گفت مراقب باش وگرنه باید برای دیدار هر دوتون به اینجا بیام اینجوری جامعه خیلی گرفتار میشم باشه مامان حواسمو جمع میکنم جز این چاره ای نداشتم میدیدم که درست سر جای اولم هستم فقط با این تفاوت که امروز صبح که از خواب شدم یک جسد تو یخچالم نبود